بله بله شیطان رضیب بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب الله على سید رسول الله و, و آهر طیبین و آهرین و معصومین و دعت دایمت و, دایمت و, و, و کتاب و این صاحب رسول رسول به اتنیان یه این کتاب انها خیلی مشکل نهیز به المجموع و درست کردیم از حال ما من یک نواد از این کتاب نرد نکرده این صاحب نمیشونیم بیگیم یه نواد و به لحاظ علاقت واقت نظر از این نقطه خیلی چیزه رو به رسول الله اینجا داده شده که واقعا نظر تاریخی هم دادن این اینها به روایت بسیار بسیار مشکلی خوب الاده نشده و حال ها یعنی خود نگه نصف ها که اکمان نصف اما به حال خیلی باشیم این راضیه به مجموعه کلمات اصحاب روایت میشه و میشه اصحاب از کردم مورده در اونجا آقایی تخیر میردیم یه مقضا این شخص هم از کتب اهل صندت صحبت بکنیم در کتب احضای صندت چیزی که خیلی بگاه تحجیباره تضابد کلمات شن در شناخت شخصه حالا بیرادیم مسئله رمایاتشون ما در, در, در از کتبش آمده من در اینجا دو, دو کتاب پیدم که یک های معالفه به خاطر این هر دوش شرح هاشی هستن در دو کتاب دیگه اون دو کتاب معروف هستن یعنی من یکی میزانور اقتدار زهریست که کتاب معروفیست و چهت تونیست و یک راه خاصی در کتابش داره کنیش رو بردرسه کنیم این حجر که تقریباً دیوی سال بعد از ایشان هست این حجر اصلالی یک کتاب اونان لسام و میزان خب این میزان, میزان یعنی ترازور لسام و چیزی که آمیدان میشه در ترازو که تشکیف شده. این کتابش رو اصطلاح بشن یه اصطلاح اسم کتابش دسان رو میزان و به طور در کتاب سعی کنه مطالب زرگی رو رد میکنه کنه اهدهی رو میکنه. اضافه بر مستقر رو که زرگی و ایشون رو با رمض زده زیادی مشخص میکنه یه مثلای موظم کتاب هست از رجال شیعه است این کتاب این از ممیزات مهمشه این کتاب رو در میزان که اضافه کرده میزان رو لیه اتدار مستدرد رجال شیعه شده و مصادرش در رجال شیعه کتاب نجاشیه یک کتاب شیخ سوسیه یکی کتاب علی ابن حکم بیشه نیمشناسیم این کنده بیشه نیمشناسیم احتمالا ما نرحب بوده احتمالا علمال شان بوده احرم بود. ولی که ابن عبیته این دونمتر علماء رژانگی شیعه هستن ما از ما آگاری نداریم یعنی علماء اطلاع ما بر مصالب ابن عمال عبیته و علی ابن حکم این بردن علی ابن حکم نیست که ما تو بارد دویم شده با این بایه جالیه احتمالا برد زمان بوده برای از هم باری با او ما از نحرش. نحرش هم به و شیعه اطلاع ما از چند داره ایشتر از نبیتی داره ما از از نبیتی هم کتاب میزانه را دیگه نداره کنستم کتاب خود رو نداری قیده از سیبی یکون سلم ها لحربه معلومات خوبی هم دارد حساب هم اینکه شده خوبه و ما خود ما از ایشون هیچ آشنایی نداریم یعنی حالان که من در خدمتون هستن تنها را که ما از نوشته های یک نبیری که بیرن همی لسان هیچ کتابی از سنیان نداریم نه از سنیان اشیعه هیچ را دیگه نداریم راه ما منتهی به در ابن مهجر در لسان هم این هم دقیقا به این کتاب هم آسایش دادنتون، ما چون کتاب اون نمیتونیم، و کتاب وریم نمیکنیم، پیش ما نبوده، چیزی الان نمیتونی بینیم. اما ایشون از زج شش نامو کنه خیلی بالا کلو بذاریم. نه با کتاب چه ما هم یعنی آنچه که ایشون از زج شش با کتاب بیکار، اما از زج شش خیلی بالا خیلی که میگه قابل شه شه توسی فلان رو من داشت کردم اصلا ما ایشون مثلا یعین ابراهیم رو کلاخته داخل بشه مثلا یعنی چه اثرشه نه عجیبه اون چه که ایشان از شه توسی نه خیلی درود میده بعد مطمئن میم که قطعاً ایشون اشتباه کرد نه نو ما عزوال شیخ سوسی و حتی نجاوش. شما چون نجاش با هم مطابقت نگردن اما شیخ سوسی از همون ایام که نجا بود سال ازش در حسابا زیاد مقایسه کردم تا نوشه خودم نوشتم اگر روز زیاد داره اعتماد بر نوشه ایشان نمی‌شکن اما ابن احمید چه فرقی رو ما نمی‌دونه الان چون کتاب دریتگاه هست که مقایسه بکنی از راه دیگه هم به اون نرسید نه سنی نه شیعه الان هم یه کتابه نمیتونیم مقارنه بکنیم که ایشون غلط خلوط دارد از اون کتا یا غلط این راجع به اجمال در ایشون در اینجه در اول دستان میزان اولا به عنوان اسماعیل ابن زیاد اسمشو برده یا ابن ابی زیاد با تردید از کردم قدمتون در کتاب اصحاب ما اسماعیل ابن عبید زیاد رو رسم بردن یه اسماعیل ابن زیاد دیگری هم هست اون ر اسمایل بن زیار دو دوتو اردوزن در نجاشی در کتاب نجاشی در کتب اهل سنت من اشاره میکنم که الان بشه اسمایل بن زیار آن عادی بن عادی زیار آن بن جمان جبر لا یود و من هواه ولاده بی ما این انتها که در کتاب من چون میخوام بگم که مفید باشه در بر مراجعه کردیم به کتاب میزان، همتها یعنی این کلام میزان و ارتدار زهبی بود تا اینجا. چون اصلا کلام میزان و ارتدار نرمو کنه برطریق داره مثل آبوس آشتو سریعه اول کلام معمولی نرمو کنه برزر میکنه ایشون کلام لایوزران منحوقه این کلام به اسطلاح میزان و ارتدار زهبی و از ایشون بیگه وفید ثبات ابن حبان ایشون ارتدار میکنه حالا این شخصیه اسمش هم بیرخون میدیم بعد ایشون داره که اسماعیل ابن زیاد المدنی اسم این زیاد اون مدنی همه مدینه ام جوه در قاله لعظیم ابن عدی منکر الحدیث و ده هم قبله بود انتها این کلام میزان ده اتدا حالا این کل کلام میزان نه خود میزان ده اتدا در خط بکنی احتمال داده اسماعیل ابن, ابن زیاد المدنی سکرونی باشه لذا شما یعنی قاضی الموصل، آن لذی عقل ملاقات یعنی, یعنی ابن ماجه. چون ابن ماجه از سراسر تماکیتی که از سکونی نه میگرند. این دکتر میخواد، تو یوزان دیده دختر؟ یک جدیده از حافظ اسماعیل نه زیاد مدرنی کجا سکونی کجا مدرنی کجا؟ دکتر میگه اسماعیل نه زیاد مدرنی گفته این لازمی همی سکونی باشه. این هم یک. بعد یک نهار دیگه. ذکر کرده و یک نفر دیگه، دو نفر دیگه، یک نفر دیگه ذکر کردم، می‌خوام بگم بعد داره اسماعیل بن زیاد در این من حنادی کتاب من می‌خوام عناوین شروع یکی از اثرش رو نازش بگم. شیخون در یاد لا یحل ذکرو فی الكتب الا علا سبیه القد حفی رواهن غالب الخطان این همون عبارتی میزان را ابداده این ان ابی حریبه ان المقبوری ان ابی حریبه رضی اللہ عنو رفعه این رفعه این ابی حریبه رسول الله حالا کلامش حدیثی شکل باطله میبود ناشون نرکنه قاله ارغز الکلام الالله الفاسیه اینکه دیگه ارغز الکلام و کلام و شیاسی ارکوزیه نما اون که دوست و کلام اهل نار البخاریه، ما خراسان. <تصفيق> و کلام <و> اهل جن علی عربیه. خب حدیث فاضل شهون درجو شهون. بعد فرضون زروا همین ابو اسمع عامر بن عبدالله برقی. بعد ایشون که واه وا موضوع اون دقت نکنه بگید که موضوع بالاتره. بالاترین درجه موضوع. لا اصل در من کلام رسول ولا حضرتی و هره ولن مقبوری ولا ها و کلاما ابن حبان. حبان یه خود این شهر جهر کرده. مالیه. هم رو جهر جهر. و همه رو جمع کرده. و از ذهن بعد هم انهو اسمایل ابن عبیزیاد المذکورت تحضیقی. تحضیق مراد تحضیق و کمال مزید. بسیار کتاب خوبیه. انا یکی شعوده رو این و این اسمایل ابن عوضی دیگه در تحضیبه همین سکونیه این اسمایل ابن عوضی ایشون میگه برز همیشان که این شیخ در جال همین جناب سکونیه و اورد هم نسایی فل فلحافر فیترجان که فل مدنی علاقی زکرالعزی احنا هم مدنی باشه مدنی هم احنا هم سکونی باشه و خدا محتمه داره بعد خود ایشان خود ابن حجر و قد فرص فرال خطیب خطیب و بعد که تابشم من داشتن میگه من مراجعه نکدم به همین اتفاق کردن فیلم متفقه و مختلف چون یکی از بحثایی که در رجال به ازدار بعدها مطرف شد المختلف و المختلف دایه بهشون گفتن المتفق و المختلف گفتن. یعنی چیرهای که لفظایشون دسته همه همه همه هم فرزون کنن این یک تن شد در رجال مثلا تو کتاب‌های مستقی هم ن یا میکبتن علی مختلف و مختلف مختلف یعنی کنان با کنان یکیه مختلف این اسماعیل ابن زیاد اگر اونجا باشه اینه اینجا باشه اونه ده خط میکنه گاهزیزان علی مختلف و مختلف این چهام شده این کتاب خطیب بردار خطیب بران انصافن معرضه و رجالی فوقلازه این انصافن خیلی مرد تراجعه من ها خیلی فوقلازی کتاب خطیب بردار مختلف ها چیه؟ اون تمیز مشترک این مثلا, مثلا میگه اگه ما پنش را حریز داریم حریز سلسل برادی حریز اینجوری یه و مختلف دقیق میگه وقت فصل خصیص مختلف و متفق این دو تعبیر دارن المتفق تو ابواب رجالی با میدارن یا کتاب تنظر مختلف یا المختلف و مختلف و المختلف بله اسماعیل بن زیاد مل اسماعیل بن علی ابی زیاد دیگه این دوتا نام میگن فسل تو کلامه او یعنی ابن حجر میگه و ز تو فی ترجمه اسماعیل بن زیاد سکونی فی تهذیب تهذیب ایشون میگه من طولانی تر در کتاب تهذیب و تهذیب متعارضین بحث کردم اونم مال خود ایشونه کتاب تهذیب و تهذیب تغییرات در همین کتابه اما بیشتر جنده‌ی حاشیه بر تهذیب الکمال داره. اینجا جنده‌ی حاشیه بر کتابه، کتاب کتاب وجوه باز در اینجا میگه اسماعیل بن علی زیاد و یعنی ما ما در مصادر ما اسماعیل بن علی زیاد چکونی درش مسلمه. اما خوب شام کنجا سکونی از یمن بله در آلت دارد با که این بزرگ یه هرستان انسان کتاب خوبی کتابی خوبی دارم خوبی خوب خوبی خوبی آلم خودشون نه آلمان اسمایلت مسلم محصول کنه حدیث قلتو قلتو یعنی کلام زهری عبود نمو قابل بیال موسی همون سکونی خودم. همچه آدم رو نسخون حدیث میشه آبا در نظر بسکتی بیشاره میزان و نهت زهدی میگه اونه قاضی المنسل المنکور این کلام رو زن و قادر خلیبی شیخون بس لیکن این ظاهرت اشتباه کرده این اون باشه این ظاهرت شامی نبادمون باشه این چیز رو نبادمون نبادمون باشه چون من روی تمام هر بسومیار رو مختلف بعد از اسماعیل بن علی زیاد اشعری این کلمه شغری که به معنای نمی‌مونه تذکر شده در کتاب انصار زمان خوب که داخل و انصار زمانی بسیار کتاب خوبی سر رعد داره شوری داره یکی نثار بکیه منصور شعری هم داره شغری و شغری هم داره به کسر او و فتحه وا من من یه لغاتی رو اسمانی و ابن یا شدری سکن خراسان قال یحیار یحیار یحیار یا یحیار کذاب و قال ابو حاتم مجهور رو یک حدیثی رو میکنه برد که یک در روی او عبوبت قال رسول عبوبت رسیدی سی بر احضارو بردی و از یک پفر راید ها اصماعیل حاضرم اصماعیل نویزیان و پین لنگه کن اگر خودش جهر نکرد فرم آفت رو به من دونم مشکل مثل اشتباه ولو خود شهرمان جهر شد این عبارت میزان و ارتضاله. این اینم گفته ایک این، اینم راجعه اسماعیل اصماعیل خود افنه هجم خود ها که دار خط محلق خود افنه هجم بگی من نقل از خط زهرین هم رو کنم پی اصنا ترجمت و سوابی که اونجا اسماعیلزم عویزیاد اینیز یا قبلی خیلی دینه از دی فشاری یا شهری باز از دین میکنی؟ این جا اینجا خوب دفعه و و دلتو اینی که تا که ما سرمی ها بود من تمام نمی بود این طرح برای این رسر و قال و دلتو به خط این نعبیتی حالا از سر خالی سه رجال این در رجال موسیقی خطی بوده و درستو به خطه نویتک این خیلی عزیبه اسماعیله بینه سکونی یا به شرکه این خیلی اینجا ایشون اسماعیل نویتک شرکه کارده سکم خراسان فیلی که سکونیت خراسان داره اینجا خراسان شرقی به دو سرشی هست شغره و شعر و شغره این یک مغلقی که برنا پیدا کرد در کتاب ما شعیری آمده در کتاب ما در ازمان اگر و سکونی به یک شعیری در این کتاب ابن عویسی که از این ابن عویسی از بزرگان شیعه از اهل انسابش ما که ایشون نمی‌سکولدن فقط در کتاب ها در از کتاب حساب می‌زاشون میشه معلوماتی که خوبه بد نیست از قلطو دارم اما اینطور که گندگی... از اون صور خیلی دیدی این در یعنی حدود قرن همون حدود در اون یه نظرت متحد فکر میکنم حالا من دقیقاً ساعتش الان تو ذهن نیست نمیشد در, در این بحثا الان من تو نمیاد این برده است و به خط افت حبیته که حرابیست و شیدیست اسمایل و مردی زیاد سکونی و یعنی به شغلی این خیلی برای ما سلکو باوره خیلی برای اولین بار که حقیل شیعه توصیف به توصیب کرده در مسادر دیگه ما که اصلا نیامده اصلا ما در کل رجال شغلی نداریم این با چه داریم شغلی داریم ما شغلی شغلی در سکونی اند داریم احس بلکه ایشون هم بوده اینا نسخهش فرض بوده نه. ایشون که در حافظه ابن عربی شاید که دو شعر دیدیم که آنکه ایوشو ما چون کتاب میتونیم بگیم که نسخه ایشون نسخه رجالش که اون که, اون که نسخه رجال شیخ که ایشون اما نسخه ابنبیدی و الان هیچی خبر نده ده بس همون دیم آیا واقعا اینکه شقری بوده شعیری در روایت عبارت معاملزه بلده الان آن هم که در نجاشی داریم شعیری نجاشی و فهرست شعر و هم در روایت داریم تک و سوک توی عبارت داریم تک روایت داریم توی شعیری اون از تأبیر ایچان اینه احض و رجال شیعه و شغاز و, و رواست روا... پس اگر ما توصیق سریع برای نجوش برای سکونی باید توصیق نبیده. به نبیته شیعه ایشون توصیق سریع کرده از که توصیق نجوش سکونی در مسازه ما توسط ممتبر شروع بده. اول که گفته مرمون در ممتبره ایشون از استضحاری کنند از عبارت به اما قیل از اون مجموع ابن نویته یه که واقعا چیه و ایشون هم میگه من برواهند رتر از توسی زارت نویته یه دیده شیخ توسیه که هون و نوازه هست. درسته این مطلبی که درست صبات تو توی داره اما نوازه آمده این دمیده چرا؟ چون عکرى نوادر را به این ابن فقط شعر توتی میشه نگا دقت ها و ها رو خوب دقت چون در کتاب شعر هم گفته درو کتابو نوادر نوادرو فقط شه این دقت ابن عبد الکریم میگه شما و و ترسی و لهو کتاب و اون مذرکر اسماعیل ابن زیاد سولمی این هم درسته قال سوسی کوفی یون سرم رجال شیه اما به ذهن من خیلت تو عبادت شیفت سوسی نیست اگر آن کام که سرم نگاه بکنن اسماعیل ابن زیاد سولمی در کتاب شیفت سوسی آماده اما به نظر توش نداره. بله نجایی داره کوفی یون سرم یکتا در ایشون من سیمو فارمیه این روان عبداللهم مغیریم الان تو ذهن من میاد پس معلوم شد که احتمال میدن اسماعیل بن ابی زیاد شقری یا شقری این همون جناب سکونی باشه ببینم چیه عجیبیه الان ما به این مقاله رامی نداره این توی, اس... توی این کتاب سانیزان جلد اول در زیر عنوان اسماعیل بن زیاد و ابی بس دقیق بفرماید چون اسمایل سکونی پیش ما اسمایل ابن مسلمه اگر آقایان نگاه بفرماید در این به اصطلاح بس این مطالب بود که در این کتاب میزان لسان المیزان بود از که خود ابن کتاب دیگه ای به نام و تهذیب داره تهذیب چون یک کتاب مرجع اساسی پیش اهل سنته که واقعا خوبیه انصافا بسیار کتاب خوبی در عالم خودشون فقط مشکلش اینه که متعدد کسایی که در کتاب سرکه روایت اند در سواهفته البته متعرض اونها شده اگر اون جایی دیگران نریشته اما فقط اونارو تعرض شده حتی صحابه را متعرض شده مختص دروبات نیست اما کتاب نیدارد دار صحابه هم نداده این تر... ترصفه میدارد کتاب دار زحفان زیاد داره اصلا شن کتاب برای این حبیتاً زحفان نشته شده با اول قطعا که انگ نشن رو نسی در کتاب جادیت اولا اما در کتاب تحضیب و کمال مزی اینکوه در کتاب تحضیب و کمال و انصافه کتاب پر معلوماتی است کتاب خوبی است برگیم کتاب تحضیب و کمال اون مختلفی تعلیق و تحضیب و تفریح سو اصلا تقریب و تحضیب تحضیب و تحضیب این تحضیب در اینجا مراد همون و کمال نزدیه دقیق میپنند ایشون داره که در همین جده یه تحضیب و تحضیب صفحه اینی هر شده اصلا ابن یک و کلام به اصطلاح جناب زهری داشت یه تحضیب هم بر کلام نزدی داره ایشون میگه اسماحیل ابن زیان و ایوان ابن عبید زیان اینا ابارات نزدیه از قاضی قاضل موسیب بس این دهتر از مزاد اعتدامه بشته روحن ابن جوری و شعبه از احل سمت اسمیار از بزرگان شونه و هنه و فلان و فلان و فلان ادهیرم اسم برده ابن نهدی صاحبه از کامل چاپ شده از جاوش مونیکرون اممت تو یری لا یطابع و احدون علی اما اسنادن و ما متن از اجل می شما روا ابن ماجی حدیث در حدیث کی فی روا هم روا له ابن مالك حدیثا واحد در خود حدیث برای همی که می فی رباب نهی عن نقص خلاف الید هم در روزی چون یکی خلاف این را هم یکون بخش را که لعض و براتن را را کامل نمی کنیم به خلال هر عطا ابن عباس این کلام مختصری بود راجع از کلام منزی در تحضی برکم قلت رو مال ابن حجر اینجا ابن حجر بیشتر توضیح داده من اینالا توضیح ابن حجر رو که اینشان نافه باشه از ندید من دعنه که ابن ماجر اسمایل ابن زیاد میگه در کتاب ابن مازیه اسماعیل ابن زیاده غیر و منصوب یعنی سرکنی توش نداره و به ابن از زیاد زیاده, زیاده، لکنیه و فرد خطیب که الان گفتیم خطی بردار که مدرد باقی مولادی سوزن من کشیده بین اسماعیل بن زیاد و اسماعیل علی زیاد قاض موسیق که الان بردنشون موسیق موسیقی و ننیده من از موسیل قیل ابن زیاد یعنی در باب سکونی ابن زیاد هم گفتن از به نمزل کنید همه ما معروفه سوا, سوا عبیدیاده و سوا به نمزل کنید و قد دا نکرن دارگوشنی دارگوشنی منطقهی در بغداد بوده چون ساکن اونجا بوده به نمه اضافه از دار قطر محلی که مثلا شاید پنگه میخوستن در این محلی بندرز دار قطر موجود ام بی عبی زیاد مسلم این تو اواز ما هست که اسم پدرش ابو زیاد پدرش مسلم عبو زیاده بندر و سهی بر... از که بندرزار شد که اسمایلت و مسلم در این کتاب تنظیب و تنظیب و ذکر خطیب انالقاضی انالعزی قاله به قاض موسیل انهو اسماعیل ابن عبی زیاد یعنی فلان و ذه افر بود و ساق الخطیب من طریق فلان ان اسماعیل ابن زیاد تضاقه ابن زیاد فلم ترجمه لقاض موسیل به انهو ابن عبی زیاد و انهو شامیان سکن و مراسان <تصفيق> این این مثاله در کتاب ما نیامده مثل سکن و در کتاب ما موجود نیست و سیدی من کلام مزدی انهو سکونی که سکونی همین و کلامو ابن عدی نماز ذکر رو فی غاز موسیق و ذکر اختلافی اسم عدی و صاد له الحديث الذي اخرجه ابن ماجه انا بيني من, من که تو به این عبارات دقت کردم من شو من شایع اختلاف و این اهل سنت یک کرمه. این حدیث والد رو یکی از مشایخ گفته اسماعیل بن یکی از مشایخ گفته مشایخ بن حدیث واحد دیگه من نمی خوام در نگاه کنم در میامش وقال و, و ذکر ابن حبان اسمالی لمن زیاد بدون کنیه فقال شیخون دجالون لا یهل رذتوه فلکتب الا علا سبیل تردی بعد اون روایت عبورتی او حرام و احل نار فارسیه قرآن این عبارت عبورت بعد از اون عبارت او بعد در نشبیه هم این اسمالی دیگریه. سمت ودکر آن خطیب فرمال رو آن فلان محس نده در تاریخ کبیر بخاری قار اسماهید ابن زیاد عبو اسحاق بلخی که شخص دیگه دیگه این به سخونی درمانی بلی الان آخری ماز خوب دفت خلاصه بحثی که معلوم میشه که اهل سنت در شناخت این سخونی اجمالا یک قاضی هرگی کرده هم. تو اسم شیره. و نکرم خطیق من مدیوار در اسم های رو نزیاد من هم کوفی هم که همون سکونی ماست یعنی هنجه حرف اینجا اسم ما ساده مانده اونی که بیش ایشون یعنی و حالا من از طبقه، اینا از طبقه همین راولی سیدم شد فلان و این ها و ذکر آخر یک اسمالی بیاد دیگه اینو یقاله او الفاقا، فاقا، فاقا کسی زمانش گیرد من از و ذکر آخر از اوبوله. اوبوله. اوبوله. اوبوله. اوبوله. اوبوله. منطقه تله بوده در شمال بارگوی علامه امپولی. بله یعنی خدا ولی یهایی کوچییه وامدید منم جه جه به اصطلاح بله جه. این درازه اسماییت نزدیک. زیاد و من من یه باله بود اسماییت نه عجیب زیاد که این سکونی ما تو نیاز. بلندتر کوچه سلاحه. اسمی مختلفون فی عبیه ما همه زیاد و عبی زیاد احد همه غازل موسیل و آخر از سکونی ایشون اینجور به اصطلاع گرفتون و سی عزیز فرم و نذکر غیره همه من و آخر همه فی اسم لعبی من اسمه اسماهیل الموسیل و, و تباییمی اندلری تکلم فیه ابو زرگ و داگتنی هم از سکونی بعدی که باید دیگه نعمل کنه از عبیزور ایرازی این اسماعیل نرویزیان روا احادیث مفتعله ساختگی اون توفیه این همه امد کجا از قال کوفی هم اون تو تهاره و سخونه این اونی که کوفی است و قاضی موصله این سخونه بعد قال خطیب اصلاح ما البرمانی قاله سالت داگوهنی از اسمایل از داگوهنی برزده از از سکونی مطروح کنه حدیث یا در حدیث اصلاح در کتوب احسان نه همه به اتفاق یا نصال کذب و جعب و بعد الاخردین شخص دارم و رسالت مجزون و این شخص بعدی که حاضر پس لد تمیل انصافاً تمیزشان با خیلی میت خیلی خیلی نه خود من هم وقتی که خوب داریم اعبارشون در کردن انصافاً گیر داری انسان یا حالا واقعا دوستان افر بودن اینا خیلی وقت اشتباه شدن نه تونستن درستش بیست کدن یا چون کن روایت بوده اعتنابش نشده برقا خود ما هم که نزاه میکنید، اجمال اسماعیل ابن عویزیاد سکرونی قاضی موسی رو به شدت نهت نهتی این هست این اجمال درگرد لیکن معذاره که هنوز عباراتی و مشکلاتی داره در این کتاب تحضیب و تحضیب نه در کتاب لیسان رو می تحت عنوان اسماعیل ابن مسلم. از این اسماعیل ابن رو از سرطه 331 یک اسماعیل مسلم عادی ناروی میکنه، یک اسماعیل مسلم مکینه، این که کین این محل کلامی مفصل داره یک اسماعیل مسلم مخزونی ناروی میکنه، یک اسماعیل مسلم فاجی ناروی میکنه، یک اسماعیل مسلم شکونی ناروی میکنه. با عنوان ما دقت که از کنیش خوده اسمالی خودش عبارتان باشه ابن عبیزیاد شامی عنوان شامی هم تو روایتون ما نیست خراسان این هم مکنی روایتون ما نیستیم خراسان اگر این مطالبی که اینا گفتن درست باشه این احتمال هست که در قطع رو احتمال در حد یک احتمال هست که این شهر سفته خراسان مونده و نوفری هم که بعد نامده ری در ری کتابی می کرده. احتمال ما احتمال داریم اینو وقتی که ما چنگوزه می دیدیم، چرا کتابی در کوفه و بغداد نرو احتمالا از چه این باشه، آخه کتاب جو ری فرامید شده. این چنگو داره میگید ما در کوفه و بغداد روایاتش رو می دیدیم، کتابش رو می چون شاید در کتابه، ما نیامده اومد. خوب روشن شد. اگر این باشه ایشون شکل شیطت این طوریه. خوب در نظر ایشون ساکن کوفه بوده در کوفه اون رو واسه برزنده کرده که اصحاب نوشتن اما کتاب رو رفته خراسان کرده اگر این راست باشه نوفری هم به طور طبیعی از ساکن اهل ادره اونجا هراری هم که در تهران بوده ایشون در خراسان این کتاب رو ازشون گرفته اون را مثل اقوانه هاشم کوفه نگرفته در ره, ره گرفته اون را قوم احمد برمی در قوم گرفته نه از قوم آنه در ره کتاب ره گرفتن و نظام اون شرحهی که ما از کرده ایمونم دیگه الاله یک راه دیگه پیدا میشه چون این برای ما چند روز داریم هی تهیار داریم چرا کتاب تو قوم جا افتاده توی بخزاز و کوفه چرا نه افتاده نه؟ چرا سکرونی در گروسه و محناد روایاتش هست چرا شرده ایچه میبینیم این احتمال داره حل بکنه کسر یعنی چون در روایات ما در کتب در ما میراس های با نیامده آن برای ما تختیرش مشکل دارد و حل میکنه مشکل رو انصافاً خوب حل میکنه اینجا هم در جمعه احوات اسم ما رو ساده ندارده ایچون بگه باقور من از زعبال مفروکیم قال دارخوزنی مخصول کن یه بله. از آله بعد ایشون بله یه دهی از احاظتشش نرمو دو یکی دوتا سه تا ستا. بعد سه تا دیگه هم اسمایلیم مسلم نرمو مونه که اینا رفتی نداره. چون دیگه وقت ما تموم شد امروز به مقدار مردار اکتفاق تا اینجا صحبت راجع به سرکونید روشن شد وجود او در میان روایت‌های آمن انصافاً با ایمان نشد با ایمان نشد اجمالی که ما الان از عزم روایت ایشون فهمیدیم ما در کتاب مؤجمع بعد هر ما در میان کتابی که برون فلسفی اسم بود در اوج یکی سکونی داریم که روایت داره به ثروت یکی حالا چون هر دو رو باید بگیم. چون هر دوشان توی بساره همده ساله رو هر دو. من یه نقضا مسائل توضیح نیزه که نمفیده آن نجاشی اجازت نکر رو به نفیه هست ایشون را جنجی بیرادیشون ساکره لفت چه ها اخبرنا ابن شازان چند بار من حرف کردن روی اجازات هم مثل اصانی کار رو کنیم آن که در اجازت کار می کنن غالبا روی کافی مثلا تحضیل استثال اجازه ها کنونه در تحضیل ها به تحضیل به کتاب نجاشی مرموم استاد رضوانون داته صحبت نمی کنن در کتاب نجاشی مثلا میگن طریق صحیح یا نه استاد دیگه ماه همصحی در تحضیل و مقال ایشون فقط بررسی و اجایی می کنن و از این که نجاشی طریق شدیل می کنن اجازه به طریق صحبت مث اما مطابق نیست در کتب رجالی آن اصلا این در آقا کویم دارن اتا پاموس هم داره سندی هم داره لاکلی بله مرموس ها هم مشقه صدوق رو توضیح می دن که سنگیانن هم مشقه شیخ رو در تنظیر استثال و هم فهدست شیخ رو این ستار رو توضیح میدن اما فهرست فهدست نجاشی رو نبیلیسن اوشن شده ما از که دیگه هارس هم نسبت آسانی اینو بررسی تاریخی میخواد تو زیاد هم داری که کار انجام میکنی، معلوم کتاب رو چی نرمون بندی. گای از خودش مشوق برگذاره، گای از بغداد میره به کوفه، گای از بغداد میاد به خیلی بیاد کتبی رو که یشون نرمون بند میگری بکن. ولی یه ما بایدش تعمد بشه که اگر کتاب در کوفه بوده، چطور از کوفه به برگذار نرسیده؟ کتاب میره خوب اما خوب میره به بردان دور میخواه ایش کنی دیگه در اون کتاب احبرمان ابن شازان ابن شازان در اینجا مراد از درستان آزه سرمی کنه ابن شازان یکی از علمای فردوینه ایشون کنم ما نمیش کلا مرموم ابن شازان فردوینی گفت ابن شازان در سال چهارسن یکیش بیراد در مکه مشبر مخصوش شد یا مثلا دیگر کردن ایرام به بغداد میاد ممنون نجاشی از ایشان اجازه بگیرد در این بیراد ها ابن شازان را به تصویم نجاشی و بیراد و بیراد و و اون و از که این کلاله هشت به بحضات آمده رضا شیفه سلسی ابن شازان رو ندیده اشتباه نکنه هر جا در کتاب نجاشی ابن شازان بود اون سر پیش شیفه سلسی نیست اصلا شیفه سلسی از ابن شازان اجازه نداره اینا از مشاهیخ لیند که انفراض نجاشیه نه اینا رو در اصلا در نه او در اصلا ایشون اهلو قذنی بوده ایشون هم باید ما،, ما ایشون هم نمیشنسیم نه ترجمه ایشون هم میشنسیم این دایی که در سال چار به وقتان آمند نجاشی میگیسن هر و اجازه اتجازهی به از کتب و مسادر غم به نجاشی میگه پرشنگو دارم فندر امتاب مورد در و انجام پسر محمد نیحی های امتاب کسرشه محمد استاد کولیمی سیار بزرگوار پسری داره آزالی داره نو محمد ایشون توصیف نداره گفته که از از مشاعق مرحوم نجاشی توسط ابن شازان از ایشان نهر پس ما ابن شازان رو نمیشناسیم فقط مروف است که نجاشی چون خیلی جگو بردیه که برجا گفته از ضعفان نرم پس این ابن شازان سفر هست نجاشی رو سفر بوده خود احمد هم توسیم نداره داره دیده من اخیلت شهید ثانی جزء شمیل سانی. جز امدتی که در شیعه اگه در شیعه چون مثلا قبل هم از عبارات بعدی در می آنم همان رخص من اشون گفت به فوسیه مدنم یکی ای از این عمله هم از این را توصیف شده همه نهینگری که از بزرگان اصحاب علماس عبدالدان جرده که بغیره از آزا جیوگرده همه و حسن نموس هم خشار اشون هم جیوگرده کسی گفت اما انه هم هم تیاسه و وقتا هم شده kind of discussion. That's how I love all